درگیری شدید حضرت مسلم علیه السلام با طرفداران ابن زیاد مسلم ابن عقیل علیه السلام از گرفتاری هانی با خبر شد آن حضرت با افرادی که با او بیعت کرده بودند برای جنگ با عبید الله از خانه خارج شدند عبید الله در درون دارال اماره پناه گرفت و نگهبانان و لشگرش با مسلم و یارانش درگیر شدند و آتش نبرد سختی شعلور شد. در این میان هواداران ابن زیاد از پنجره های ساختمان دارالعماره سرهای خود را بیرون آورده و با فریادهای خود یاران مسلم علیه السلام را میترساندند و میگفتند اکنون لشکر شام برای کمک رسانی به ما حرکت کردند و نزدیک است به ما برسند. این تهدیدها و ترفندها و تبلیغات سو همچنان ادامه داشت تا اینکه شب فرا رسید شب در تاریکی یاران بی بیوفای مسلم علیه السلام اطراف آن حضرت را خالی کردند و به همدیگر دیگر می گفتند ما را با این کارها چه کار که موجب به فتن و آشوب شویم شایسته است که در خانه خودمان بنشینیم و این قوم را به حال خودشان واگذاریم تا خداوند در بین آنها صلح ایجاد کند کار به جایی رسید که تنها ده نفر با مسلم علیه السلام باقی ماندند مسلم علیه السلام برای انجام نماز مغرب وارد مسجد اعظم کوفه شد در این هنگام همان ده نفر نیز از ترس پراکنده شدند مسلم علیه السلام بعد از نماز خود را تنها یافت تنها در کوچه های کوفه می گشت تا این که به در خانه بانوی به نام توعه رسید در آنجا توقف کرد و از آن بانو تقاضای آب کرد توعه رفت و آب آورد و به مسلم علیه السلام داد او نوشید و سیراب شد سپس مسلم علیه السلام از توعه خواست آن شب را به او پناه دهد توعه تقاضای مسلم علیه السلام را پذیرفت و به او پناه داد پسر توعه از سکونت مسلم علیه السلام در خانه خود با خبر شد موضوع را به ابن زیاد گزارش داد ابن زیاد محمد ابن اشعس را تلبید و جمعی از سربازان را در اختیار او گذاشت و به او معموریت داد تا مسلم علیه السلام را دستگیر کرده سپس به نزدش بیاورند محمد ابن اشعس همراه سربازانش به در خانه توعه آمدند مسلم علیه السلام صدای سم اسب های آنها را شنید زره خود را پوشید و بر اسب خود سوار گردید و از خانه توعه بیرون آمد و با محمد ابن عشقس و همراهانش به جنگ پرداخت جمعی از آنها را کشت محمد ابن عشقس فریاد زد ای مسلم تو در امان ما هستی مسلم علیه السلام فرمود به امان دادن افراد هیلگر و فاسق چه اطمینانی وجود دارد؟ مسلم علیه السلام با کمال بی به هیره دشمن به جنگ خود ادامه داد و در این هنگام این اشعار را که از سروده‌های همران ابن مالک خصعمی در روز قرن یکی از جنگهای عربی جاهلیست است به عنوان رجز می‌خواند. سوگند به خدا یاد ام که جز با آزادگی کشته نشدم گرچه مرگ را چیز سخت و ناگوار بنگرم من دوست ندارم که دست خوش نگرنگ و فریب گردم یا آب خونک را با آب تلخ بیامیزم جنگیدن را رها سازم و تسلیم ذلت شوم هر کسی روزی گرفتار تنخی مرگ می شود حال که چنین است با شما میجنگم و ترسی از زیان و زرر ندارم دشمنان گفتند نمیخواهیم تو را فریب دهیم در کار نیست حضرت مسلم علیه السلام به سخن دشمنان اعتنا نکرد و به جنگ ادامه داد سرانجام بر اثر زخم هایی که بر پیکرش وارد شده بود مورد حمله شدید دشمن قرار گرفت یکی از دشمنان از پشت سر چنان نیزه بر او وارد ساخت که آن حضرت به روی زمین افتاد و به اسارت دشمنان درآمد قصق های دندان شکن مسلم علیه السلام به ابن زیاد هنگامی که مسلم علیه السلام را بر ابن زیاد وارد کردند مسلم علیه السلام با کمال بی اعتنایی بر او وارد شد و به ابن زیاد که در مسند غرور تکیه نموده بود سلام نکرد یکی از نگهبانان به مسلم علیه السلام گفت به فرماندار سلام کن حضرت مسلم علیه السلام قاطعانه به او فرمود ساکت باش وای بر تو سوگند به خدا او رئیس و فرماندار من نیست ابن زیاد گفت اشکالی ندارد سلام کنی یا نکنی کشته خواهی شد مسلم علیه السلام با قاطعیت جواب داد اگر تو مرا بکشی تازگی ندارد زیرا در گذشته بدتر از تو بهتر از مرا کشته است از این گذشته تو در زجر کشی و کار زشت مصله قطع اعضا و ناپاکی و پست فطرتی و غرور در حال پیروزی به هیچ کس مجال نمی دهی که سزاوار تر از تو به این جنایات باشد تو در این جنایات و پلیدی از دیگران پیشی گرفته ای. ابن زیاد در حال عصبانیت و فریاد گفت ای مخالف سرکش و نمک به حرام تو به پیش خروج کردی و صف وحدت مسلمانان را در هم شکستی و بین آنها فتنه و آشوب برانگیختی اینجا بود که مسلم علیه السلام به طور سریح گوشه ای از جنایات معاویه و پسرش یزید و شخص ابن زیاد و پدرش را بیان کرد و در پاسخ او فرمود دروغ گفتی ای پسر زیاد اسای وحدت مسلمانان را معاویه و پسرش یزید در هم شکست فتنه و آشوب را و پدرت زیاد پسر عبید برده طایفه بنی علاج از قبیله صقیف بر پا نمود نمن من امیدوارم خداوند مقام شهادت را به دست بدترین خلقش که تو باشی نصیب من گرداند ابن زیاد گفت تو در آرزوی چیزی فرمان روای حسین بودی که خدا تو را به آن نرسانید بلکه آن را به دست اهلش که یزید باشد سپرد مسلم علیه السلام در پاسخ فرمود ای پسر مرجانه چه کسی صلاحیت زمامداری داری را دارد ابن زیاد گفت یزید ابن معاویه شایسته آن است مسلم علیه السلام فرمود شکر و سپاس مخصوص خداوند است ما به داوری خدا راضی هستیم و از درگاهش میخواهیم که او در این باره حکم کند ابن زیاد گفت تو گمان می کنی برایت در این کار بهره و نصیبی هست؟ مسلم علیه السلام گفت سوگند به خدا نه این که گمان دارم بلکه یقین دارم ابن زیاد گفت بگو بدانم چرا به این شهر آمده ای و محیط آرام این شهر را به هم زده ای و در بین مردم این شهر تفرق اندازی کرده ای مسلم علیه السلام فرمود منظور من از آمدن به این شهر تفرق افکنی نبود بلکه این شما بودید که کارهای زشت را آشکار و کارهای نیک را از میان اجتماع بردید و بدون رضای مردم بر آنان حکومت کردید و دستورهای الهی را واژگونه بر مردم تحمیل نمودید و همچون کسرا وقصر شاه ایران و روم در میانشان رفتار نمودید ولی ما آمدیم تا برنامه امر به معروف و نحی از منکر و دعوت به حکم قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم را اجرا کنیم و صلاحیت و لیاقت این کار را بر طبق دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم داشتیم ابن زیاد که سخت عصبانی و شعلور شده بود به یاو سرائی و سخنان رکی و ناسزاگویی به مقام ارجمند مند حضرت علی حسن، حسین و عقیل علیه السلام پرداخت حضرت مسلم علیه السلام فرمود تو و پدرت سزاوار تر به دشنام هستید ای دشمن خدا هرچه میخواهی انجام بده چگونگی شهادت حضرت مسلم علیه السلام ابن زیاد به بکر ابن همران فرمان داد که مسلم علیه السلام را بر بالای قصر دارال ببرد و در همان جا گردنش را بزند. بکر همران حضرت مسلم علیه السلام را به بالای قصر برد. آن حضرت در این حال مشغول تسبیح خدا و استغفار و صلوات بر پیام برش بود. بکر همران گردن آن مظلوم را زد. سپس با ترس و لرز از بالا به پایین آمد. آنگاه به حضور ابن زیاد رسید ابن زیاد به او گفت چرا چهار ترس و لرزه شده ای؟ بکر پاسخ داد ای امیر هنگام کشتن مسلم علیه السلام مرد سیاه چهره بدقیافه ای را در مقابلم دیدم که انگشت هایش را میگزد آنچنان از دیدن او ترسیدم که هرگز چنین نترسیده بودم ابن زیاد گفت این حالت گویا به خاطر وحشتی بوده که به تو دست داده است شهادت حانی ابن سپس ابن زیاد فرمان قتل حانی ابن میزبان حضرت مسلم علیه السلام را صادر کرد معموران ابن زیاد او را که هشتاد نه سال داشت برای کشتن حرکت دادند او در مسیر راه به طور مکرر قبیله مذهج را به کمک میطلبید و میگفت ای قبیله مذهج کجایی؟ امروز چرا قبیله مذهج به داد من نمی رسد؟ ای دودمان من به دادم برسی مأموران او را به بازار گوسفند فروشان بردند آنجا به او گفتند ای حانی گردنت را بکش تا سرت را جدا کنیم. حانی گفت من در دادن جان به شما بخشش نمی‌کنم و در کشتن خود شما را یاری نمی نمویم. در این هنگام غلام عبید الله ابن زیاد کنامش رشید بود شمشیرش را بلند کرده و بر گردن هانی رحمه الله فرود آورد و او را شهید کرد اشعار جان در سوگ مسلم علیه السلام و هانی عبد الله ابن زبیر اسدی و به قولی فرزدق شاعر معروف اشعار زیر را در سوگ جنسوز حضرت مسلم علیه السلام و هانی رحمه الله سرود و خاند اگر نمیدانی که مرگ چیست به پیکر پاک هانی و مسلم علیه ما سلام در بازار بنگر به پیکر هانی آن پهلوانی که شمشیر ابن زیاد صورت او را در هم شکست و به پیکر مسلم علیه السلام بنگر که بدن بیسر او را از بالا و بلندی به زمین افکند. ظالمان ستم پیش با آن دو آنگونه رفتار کردند و سرگذشت آنها در صبح روز بعد به زبان رهگذران افتاد. جسدی را می که مرگ رنگ آن را دگرگون نموده و خونش در راهها جریان دارد. جوان مردی که با حیاتر از دختران با حیات و بررنده تر از شمشیر بر راق دودم است. آیا اسما ابن خارجه؟ که را نزد ابن زیاد برد سوار بر اسب گردد و از کشته شدن ایمن شود با این که دودمان مذهج خواهان خون حانی از او هستند تایفه مذهج همگی در گرداگرد هانی میگشتند و مراقب او بودند و احوال او را از همدیگر دیگر میپرسیدند ای دودمان مراد اگر شما از برادر تان هانی خون خواهی نکنید همانند زنان آلوده باشید که به پول کم برای عمل منافی افت راضی شوند تشکر یزید از ابن زیاد و سفارش او به شدت عمل ابن زیاد ماجرای کشتن مسلم علیه السلام و هانی رحمه الله را در ضمن نامعی به یزید گزارش داد یزید پس از دریافت نامه در جواب نامه از ابن زیاد تشکر کرد و کارها و قلدری او را ستود و به اطلاع ابن زیاد رسانید که امام حسین علیه السلام به سوی عراق ره شده است به طور کامل مراقب اوضاع باش و آنچنان با شدت عمل رفتار کن که به هر کس گمان یا احتمال مخالفت بردی از او انتقام بگیر و او را زندانی کن.